ای خدا هیچی من رو دوست نداره یه هیچی خبه من این همه برای این رو تلاش کردم این همه پیرس رو با سردار باقیر زاده باقیر زاده با باقیر بالا یانی چه بابا اصله بابا چه یانی ای یعنی چه کسی کرده تو دادی دادی بریم شمشیر من در نقطه مناسبش فرو کنیم آگر. برو بابا کس... دادی تو فقط حرف بیزنی توی بمنکت حق من رو دارم میخورن توی کاری از دستت برنه میاد برای جگر پارت انجام آه. بدی اصلا بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی البته چرا ما که خب مستقیما شما رو به دنیا نیاوردیم مربای بابا ولی خب نقشه به سزایی در مرحله قبلی داشتیم که حالا بگذاریم بگو ببینیم چی شده این اسرائیلی اذیتت کرده یا بابا تو هر شب ل... میدرس میای صورت بفشید میرسه ها آه. این کارگرهایی که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن بریم اه. از دم تیغ بگذارونیمشون کار زر میگی نه بابا این بدبختا که اینجا همش دارن خودشون گیج میخورن اینجا نمی چی شده بنال دیگه همینجوری کلا علم جهاد کنیم به خاطرشون نه خی ندی اتفاقاً از دست همین مقام معظم رهبریتون شاکی هم حسابی اللهم سلق از دست مقام معظم رهبری هم آدم شاکی میشه اصلا بابا اینچه حرفی زبانت را گاز بگی بله مگه یعنی چیه واقعا بله. دل منو شکسته ایشون دادی من دیگه نمیتونم مگه شما روبطه خاصی اه. با معظم له داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته نو به الله پای بچه نت... چیزی وسطه نه دادی بابا تو همه من یه نشنی دیروز از کیا تقدیر کرد تقدیر کرد آه. چرا پس کسی به من خبر نداد نه. بگو دیگه بعد کشتی منو بله. نه خیلی ایشون فرمانده نیروی دریایی سپاه و اینایی که خب. ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه نشون دادن بله بله چی رو نشون دادن بابا نشون فتح دادن بادی بله. نشون نشونه فتح میدونی بله. یعنی بله. چی دقیقاً نمیدونم یعنی چی خب چون ولی ایشون نشون دادن حتما کاره خوبی بوده دیگه پس بابا من این همه بله. سال تو این ماجرا جون کندم دادی این از سال رفتم بالمبلا. از گامبولا و سوازیلند و جزائره مکارونی جنسا بردم توی این مملکه آخو با کار خوبی اه. کرده دیگه پسرم عجب. مکارونی خیلی لازمه برای برای بابا چرا هیچی به رو... من نشون نداد آخه پسر عزیزم مربای گلابی بابا بیا ما خودمون شما نشان میدهم خم... کاری نداره که. بابا من نشون آخر رو میخوام بیا, بیا، رو تو با میخوام. من ببینم پسر است. بیا آه. نه, نه،, نه بیا ببین بیا ببینم. بیا. بیا دیگه بیا بیا بیا دادی نازم کن آرام باش به با واقع که دامان ما آغاز همه خوبی های دادی نگفتی چرا منو بدون یا فشار پسر عزیزم شما با این حیکالت نمیدانی ما شما را به دنیا نیواردیم یعنی من سر رایی بودم دادی نه خیر خناه میبرم خدا من نظور آه. ما اینه که شما را مادرت به دنیا آورده دیگه اون را اما... که میدونم بابا بله. میگم چرا یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه آن دیگه از اون لها دیگه آه. پسرم آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری قدایت آره. بکنه دیگه همین میشه دیگه آه. نکنی تو یه وقت از این کارها واقعا نکنی... که یعنی من نخواسته بخلم... بودم آه. دادی آه. نه شما برخواسته بودی پسرم ای فشل نده بگه اینقدر ناز کن